به نام احورا خداوند جان و خرد با درود بر همه زرتشتیان و پویندگان راه عشا و همگی مردان و زنان پارسا و نیک دنیا سخن از نیایش است نیایشی که یکی از پایه های سازندگی است سازندگی اندیشه و سازندگی همندیشگی نیایش را اگرچه به درگاه اهو را می کنیم اما نه از برای او می کنیم که او را نیازی به نیایش ما نیست بلکه این ما انسان هستیم که نیاز داریم تا به وسیله خود را آرامش بخشیم آرامشی که راز بهزیستی و تندرستی تن و روان و اندیشه است آرامشی که از تمرکز فکری به دست آمده و از رخنه پدیده های آزاردهنده اندیشه و تن و روان مانند تنشها، ها رشک کینه بدگمانی و مانند آنها جلوگیری می کند و در برابر نیروهای مثبت و سازنده را پشتیبانی و نیرو رسانی کرده که آن پدید آمدن هنجار و سامان یا نظم و تعادل در اندیشه و گفتار و کردار ماست نیایش من را نخست با سرودن بندهای از گاتهای و این بهترین و مهترین و زیباترین ترین سروده های آغاز می سپس با سرایش پاره های عشم و هو و ینگ هاتام این مهمترین و اجمنترین نیایش های ادامه می دهیم و به یاد میآوریم که عشم و هو به ما میآموزد که راستی و درستی بهترین بوده و خرسندی و خوشبختی میآورد یتا گوش زد گوشزد میکند که گزینش راهبر دین دنیای ما یعنی ازو از برای راستی و درستی او بوده و مانیز کارهای خوب زندگانی خود را برای خدای دانا و در راه آبادانی این دنیا و همه باشندگان در آن انجام می دهیم و سر انجام هاتام که مرد و زن را برابر قرار داده و تنها میزان برتری یکی بر دیگری را در خدمت و نگاهداری و پرستاری آنان از آفریدگان اهورامزدا میداند. در ادامه نیایش های گاه ها آمده است. که برای هر گاهی نیایش ویژه خود را دارد گاه اوشهین یا سپیددم گاه هاون یا بامداد گاه رپیتوین یا نیمروز گاه اوزیرین یا پسین و گاه ایویس روترم یا شامگاه سپس با خواندن، کم نامزده ایمان و اندیشه را به یاری میخانیم تا در برابر دروغ پرست ایستاده و با وجدان بیدار در پی راستی و حقیقت باشیم با تت پرسا میپرسیم و میدانیم که راهبر دین و دنیای ما عشوزرتشت است و پیام او را از راه سروش در خواهیم یافت احمای رشجه سرودیست برای آرزوی تندرستی برای خود و خانواده و با سراییدن آن کشتی را در دست آماده می تا با خواندن اوستای کشتی پیمان خود را زنده کرده و به خود یادآور شویم که برگزیده ایم تا زرتشتی باشیم و با کارهای خوب خود جهان زنده را تازه به تازه گردانیم تا در پیامد آن خرسند شده و خرسندی را پراکنده کنیم و در پایان با هماندیشان و همرزمان خود دست به دست داده و سرود یگانگی یا همازوربیم را سر می دهیم سپس با خاندن آعیری ما آن آرزوی نهایی را تکرار می که دوستی و برابری برای همگان به دست آید تا هر کس در پرتو اندیشه نیک و وجدان خود از پاداش شایسته برخوردار گردد